وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَعَجِّلْ لِي وَلِبْنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنبِيَاءِ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ بحث قبلیمون بحث ایمان و اسلام بود چنانچه در حدیث جبرئیل اومده بود که اومد نزد رسول الله علیه السلام و زانه و زانه رسول الله صلی الله علیه وسلم نشست و پرسید که ایمان چیست و اسلام چیست و رسول الله صلی الله علیه وسلم هم قاسخ دادن و فرمودند که اسلام شهادتین هست و نماز کندن و روزو گرفتن و حج رفتن و زکات دادن هست اینها اعمال ظاهری هستند اسلام یعنی اعمال ظاهری از ایمان پرسیدن رسول الله صلی الله علیه و وسلم پاسخ دادن که ایمان ایمان به الله و ایمان به ملائکه و ایمان به پیامبران خدا ایمان به های آسمان، آسمانی و ایمان به روز آخرت و قضا و قدر خداوند شرش و خیرش اینها جلسه گذشته توضیحش دادیم شرحش دادیم حال میریم به تک تک این موارد تا اینکه ثابتش بکنیم ایمان به الله ما ایمان به الله داریم الله کی هست و چرا باید بهش ایمان داشته باشیم و چند تا داریم خداوند چند خدا داریم آیا این خدایانی که در روی زمین پرستیده میشن اون گاوی که پرستیده میشه اون بتی که پرستیده میشه اون ولی یا هر کسی دیگه که پرستیده میشه آیا خدا هست یا جزئی از خدا هست جدا شده از خدا هست یا اینکه خداوند اجازه داده که ما آنها را بپرستیم یا واسطه قرار بدیم بین خودمون و خداوند آیا خداوند اصلا نیاز به واسطه داره؟ نیاز داره که ما براش واسطه قرار بدیم؟ اینها را انشالله در جلسات بعد بهش خواهیم پرداخت. اون چیزی که الان ما بهش نیاز داریم بحث اینه که ثابت بکنیم خداوند یکتا است. چند نیست، دو نیست، سه تا نیست،, نیست، چهار تا هم نیست. ما باید ثابت بکنیم خداوندمون یکی هست. یک خدایی هست که به دادمون میرسه، یک خدایی هست که صدامون میشنوه و به فریادمون میرسه. فریاد ما هست. خداوند از جملة ادلهایی که گذاشته به این که یکتاست دو تا دلیل سریش داریم دوازش داریم حتی که ادله ها زیاده ولی که ما به این دو تا خواهیم پرداخت دلیل اول دلیل فطرت هست خداوند در, در در درون ما یک نیروی قرار داده یک سرشتی قرار داده که حالا در شرع در دین به اسم فطرت از آن یاد شده این سرشت انسان وقتی که انسان در مصیبت میفته وقتی که انسان در گرفتاری میفته یاد خدا میفته اونجا هست که دست به دست به دعا بلند میکنه، فریاد میزنه، پروردگارا ما را نجات بده. بله خداوند چنین در قرآن یاد میکنه از این دلیل، از این مدرک بر وجود خودش و بر یکتاای خودش خداوند در قرآن میفرماید. و اگر مس الانسان درن دعا ربه منیبا إليه وقتی که انسان ضرر بهش میرسه، مصیبت بهش میرسه، وقتی که دردی میکشه، در اون درد شدید، در اون گرفتاری شدید فریاد میزنه پروردگار را به دادم برس. پروردگار را نیازمند تو هست، چون کسی دیگه نیست که صدایش رو بشنوه. در خودش، در درون خودش احساس میکنه که کسی صدایش رو میشنوه. احساس میکنه یک نیروی برتری هست که میتونه او را نجات بده. اون نیروی برتر است؟ اون کسی که صداش رو میشنوه کیه؟ اون کسی که او را بینه کی هست؟ چی, چی سبب شده که فکر بکنه در درون خودش که کسی هست که صداش را بشنوه بله کس، کسی جز پروردگاری یک تا نیست که این سرش را در ذات انسان قرار داده بله خداوند در قرآن در چندین جا از این سرش یاد میکنه همونطور که خداوند میگوید و اذ اخذ ربکم من بنی ادم من ظهورهم ذریتهم واشهدهم علی انفسهم الست بربکم اون وقتی که خداوند انسان ها را خلقت خلقت کرده اون وقتی که آدم را خلقت کرد و همچنین فرزندانش در کمرش خلقت کرد. اونجا بود که خداوند گواه گرفت بر وحدانیتش. الاس صبح رب بگم. بله اونجا ما شهادت و گواه دادیم که خداوند من یکتا هست. و بر یکتا بودن خداوند اقرار کردیم. قال قالو بلا شهید نه. اونجا هست که ما گفتیم شهادت میدیم گواه میدیم بر از ای, ای, ای پروردگار. این نیرو هست. تا وقتی که پاک تا وقتی که دست نخورده هست، دلالت بر وجود پروردگار میده دلالت میده بر اینکه خداوند یکتاست مگر اینکه این, این فطرت عوض بشه چگونه فطرت انسان سرشت انسان عوض میشه وقتی که انسان تلقیم بشه که خدای دیگر هست کسی دیگر هست که صدایش را بشنوه کسی دیگر هست که خداوند او را قرار داده همون که در بحث قوم قوم ابراهیم پیش اومد ابراهیم وقتی که رفت باهاشون مناظره کرد وقتی که دید کسانی ماه را میپستند ستاره را میپستند کسسان دیگر پرشید چه هریبان زد چه سخنی با آنها گفت وقتی که ستارگان را دید گفت که این پروردگار منه وقتی که روز شد صدا زد ای ستاره فلانی به دادم بر فل فل قلله اوحببل وقتی که میرفتن وقتی که شب تمام میشد روز میشد شدد صدداشو میزد خب چه پروردگاری هست. که شبها میشنوه ولی در روز وجود نداره. روز بار دیگر ماه را قرار داد بعد فرداش خورشید را قرار داد. هر وقت غروب می بعد از اون صداشون میزد. میخواد ثابت بکنه نمی تونه اون کسی که گاهی هست گاهی نیست پروردگار باشه. خدای یکتا باشه. خدای یکتا کسی هست که همیشه میشنوه. همیشه فریادرس انسانه همیشه انسان می تونه بهش برسه و دستیابی بهش پیدا بکنه بله. اون کسی که در دسترس ما هست هر جا در بالای بالاترین کوها در فضاها در اعماق دریا اون کسی که فریادرس ما هست اون کسی که به داد ما میرسه کسی جز پروردگار یک تا نیست بله خداوندم چیدین یاد میکنه از مشرکین با انها میگوید شما، شما ای که وقتی در،, در روی دریا سوار کشتی هستید وقتی که سوار کشتی شدید وقتی که خوشی می بینید وزش باد خوبی می بینید بیاد پروردگار میفتید. بیاد ببخشید وقتی که شما باد خوبی رو میبیید خوشحال می چید. ولی وقتی که طوفانی میاد وقتی که بادهای ناگواری میاد وقتی که دریا تو هم می‌ریزه را رو می‌بینید اونجا هست که فقط یاد از الله میکنید. خداوند در قرآن می‌گوید هو الذی یسیرکم فالبری ولبحر حتی اذا کنتم فالفلکی وجرینا بهم بریح طیبه وقتی که سوار کشتی شدید، روی, روی دریا سوار شدی و روی کشتی باد خوبه که میاد خوشحال میشید، فرحو. بها جاءتها ريح عاصف وقتی که باد به شدت می‌وزه اونجا هست وجاءهم الموج من كل و موجها از چپ و راست اومدن و ظنوا انهم احاط بهم و هست که موجها را سراسر خود دیدن دور دور, تا دور خود موج, موج را دیدن که موجها اونها را در بر گرفته که میخواد اونها را غرق بکنه اونجا هست که چی؟ یاد از پروردگار دعو الله مخلصین دین اونجا هست که یاد از پروردگاری یکتا میکنن فقط خدا را فریاد میزنه صدا میزنن چه نیرویی هست چه چی چیزی هست که اینها را وادار کرد که یاد از خدا بکنن چیزی جز سرشتی که خداوند سرشت پاکی که خداوند در ذات انسان قرار داده هست نیست یعنی فقط اون سرشت پاکی که به انسان میگه خدای یکتایی هست که باید او را صدا بزنیم. بله تا وقتی که سرشت پاکی تا وقتی که این سرشت عوض نشده دلالت بر وجود وجود وجود یکتایی یکتایی خداوند میده ولی وقتی که سرشت عوض میشه دیگه این این سرشت میشه سرشت ناپاک رسول الله صلی الله علیه و وسلم می فرمایان ما من مولود الا یولد علی الفطره هیچ فرزندی هیچ موجودی هیچ مخلوق انس جنی نیست مگر اینکه روی فطرت و سرشت پاک خلقت بشه ما من مولودن هیچ کسی نیست که به دنیا بیاد الا یولد علی الفطره مگر اینکه بر فطرت پاک بر اون فطرت خداشناسی خلقت بشه ایجاد بشه فابواه یهودانه او یونصرانه او یمجساننه ولی پدران هستن که چی انسرش رو عوض میکنن یهودیش میکنن نصرانیش میکنن و مجوسیش میکنن نگفت مسلمانش میکنن چون اصل سرشت انسانی سرشت اسلامی هست سرشت خداشناسی هست خدایش رو میشناسه ولی پدران هستن که عوض میکنن چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلام مثال میزنن کما تنتج البهيمه بهيمه جمع هل ترى فيها من جدعاء حیون حیون سالمی بدونیام ندیدید شما نمیبینید که حیونی به دنیا بیاد که گوشش بریده شده باشه با چاقویی بریده شده باشه در شکم مادر در رحم مادر اید حیونی که چشمش اشخاص بیرون بیاد مگر اینکه مشکل ژنتیکی باشه اون مسئله دیگه هست ولی بحث بحث بریدن انسان ها چنین پاکه ولی که وقتی که پدر و مادر میان گمراهش میکنن میان تلقینش میکنن که خدای دیگر هست خدا میتونه گاو باشه بت باشه و چیزهای دیگه اونجا هست که میپذیره بله خداوند یکتاست و و سرشت انسان و فطرت انسان دلالت بر یکتا بودن خداوند و تکبودن خداوند میده اما دلیل بعدی برهان بعدی مدرک بعدی بر اینکه خداوند یکتاست عقل انسان هست، خرد انسانه، اون عقل و درک و شعوری که خداوند به انسان داده دلالت بر یک بودن خداوند میده، چطور عقل انسان دلالت بر یک بودن خداوند میده؟ ما مثالهایی که میتونیم بزنیم از عقل بر اثبات وجود خداوند زیاده شاید ما یک, اس... یک مسئله جزئی در خودمون یا در در اون چیزهایی که مثلا به فرض دور بر خودمون می‌بینیم شاید مثال بزنیم ولی که فراتر از این خداوند الا ما میرسیم بهش خداوندم هم یک سری ها میزنه از عقل که دلالت بر یکتا بودنش میده مثلا به فرض مثال یکی از چیزهایی که عقلا انسان میتونه به اون به یکتا بودن خداوند برسه به اینکه خدای هم هست خدای یکتایی هست بحث نظم آفرینشه خب ما در دقت بکنیم در آفرینش مثلا به فرض خورشید در آسمان میچرخه زمینم میچرخه ماهم هم میچرخه همه اینها دارن میچرخد. کی هست که اینها را میچرخونه زمین را دور خودش کی داره میچرخونه در این فضا چرا نمیفته؟ چرا نیروی جاذبه ای نیست که زمین را پایین تر ببره؟ چرا ساعتها یکسانن چرا باید چهار ساعت با سانیهاش هاش طی بشه تا اینکه روز بعدی بیاد چرا یک ثانیه عقب و جلو نمیره؟ چی چیزی هست که زمین را میچرخونه غیر از پروردگار یکتا هست کی هست که این نظم و انزبات در آفرینش ایجاد کرده کی هست که اون نطفه ای اون قطره آب گندیده ای که در رحم مادر قرار میده کی هست که هدایتش داده به اینکه وقتی که در رحم مادر قرار میگیره گوش را بسازه بد بینی بد چش بد دهن بد از دل و روده گرفته تا قلب گرفته معده گرفته کی هست؟ که اینها را قرار داده کی هست که این قطره آب بهش برنامه داده بهش فرمول داده که فلان روز باید دثابی بیرون بیاد فلان روز باید قلب ساخته بشه مگر چیزی بود غیر از اون قطره آب قطره آبی که یک ذره اثر سوز... یک ذره بیشتر نیست اثر سوزن هم ریسره وقتی که در رحم مادر قرار میگیره کی هست که هدایتش میکنه به اینکه براد تخمک مادر بشه بعد از اون به رحم مادر بچسبه. کی است هدایتش کرده کی هست که در اون رحم مادر دستور داده به اون جنین که باید به رحم مادر بچسه و تغذیه بکنه غذای جنین را کی فراهم کرده؟ کی این و انضباط را قرار داده؟ کی هست که این خون رخته را تبدیل به گوش کرده؟ سپس استخوان سپس تبدیل به یک انسان کرده؟ آیا جز خداوند یک تا کسی دیگه هست؟ آیا این احتمال هست که خودش همینطوری به وجود اومده باشه؟ یعنی بدون خداوند، بدون اینکه کسی این را ساخته باشه، یعنی این جنین رو بسازه، آیا همینطوری خودش تصادفی ایجاد شده یا اینکه اصلاً خدایی وجود نداشته و خود جنین خالق خودش هست خودش خودشو به وجود آورده. چگونه این جنین به وجود اومده. ما وقتی که وارد یک کلاسی میشیم، کلاس درسی میشیم، میبینیم که سندلی ها چیده شدن. کنار هم گذاشته شدن اونجا هست که به خودمون میگیم خب حتما یک کسی هست که اینها رو مرتب کرده ماشینی میبینیم درست شده به خودمون فورا میگیم حتما یک کسی هست سازنده این ماشین یک کسی هست که این ماشین رو اختراع کرده ساخته یا لامپی میبینیم یا هر چیزی میبینیم ما در دور بر خودمون از موبایل گرفته از تلویزیون گرفته خب اینا ای دارن این نظم و که در این موجوده در این چیزها ایجاد شده غیر ممکنه که ایجاد کننده ای نداشته باشه همونطور هم ماها غیر ممکنه که ایجاد کنندی ای نداشته باشیم کسی ما را ایجاد نکرده باشه. غیر ممکنه این چیزی که همینطوری خودش به وجود بیاد ممکن نیست اصلا و رخ نمیدهد که مثلا بلفررس یه چیزی با یک تصادفی بشه یک انسان دوتا ماشین به هم بخورن انسان بیرون بیاد. آیا این چیز ممکنه خیر حاشا و کلا هیچ وقت این کار ممکن نیست که در اعضای چیز تصادفی یک انسان به وجود بیاد مثلا بلفررس جنین سگ بشه یک انسان یک انسان خردمند یک انسانی که هوش و عقل و درک و شعور داره نمیشه از اون نطفه‌ای که ما از نطفه هستیم سگ از نطفه است گاو از, گاو از نطفه است ولی هیچ وقت اون گاو نطفه گاو انسان نمیشه و اون نطفه سگ انسان نمیشه چرا نمیشه چون منظمی داره چون کسی هست که اینها را تنظیم کرده اینها را درست کرده و این برنامه‌ها را بهش داده غیر ممکنه که سازنده ای نباشه مثال‌ها زیاده خداوند در قرآن مثال میزنه از برهان عقل از دلیل عقل بر اثبات وجودش مثلا به عنوان مثال فن بوده خداوند ام خلقو من غیر شی ام هم الخالقون ما بکنیم در این فرمول ام خلقو من غیر شی آیا احتمال داره که انسان آفریننده‌ای نداشته باشه آیا احتمال داره که بدون اینکه کسی اونها رو بیافرینه تبدیل به بی یک انسان بشن یک یعنی این از ما انضباطی که در بدن انسان هست از اون دقتی که در چشم ما هست از اون دقتی که در قلب ما هست از اون تپشش از اون جریان خونش پمپاج خونی که در رگای خونی میشه آیا احتمالی این هست که به وجود آورنده ای نداشته باشه خون همینطوری خودش حرکت بکنه آیا احتمال داره همینطوری تصادفی یک معروف یک جریان تصادفی پیش بیاد که بگه آقا بله خون بره وارده مغز بشه مغز تغذیه بشه بعد فکر بزنه آیا این احتمال هست که این آفرینش بدون آفرینندهی باشه ما وقتی که میخوام یک ماده زده یخی را تولید بکنیم وقتی که میخوام یک آبی را تولید بکنیم که در رادیاتور ماشین قرار بدیم پیه یخ نبنده در سرمایه سرد میام کارخانه ها رو میسازیم تا این این ماده تولید بشه حال این ماده ای که در زیر پلکای چشممون هست اون ماده روغنی اون ماده ی که تا 70 درجه زیر سانتیگراد اون ماده یخ نمیبنده این ماده این جز، یک غده های خیلی ریز داره این تولید میکنه ما یک کارخانه ای نیاز داریم یک کارخانه با هزاران تج... تجهیزات با میلیاردها هزینه تا این این ماده تولید بکنه حال آیا ممکنه این چشم ما این ماده را تولید بکنه با, با هیچ حزینه ای؟ آیا احتمال داره همینطوری خودش خودش رو تولید بکنه که بدونه باید در زیر این چشم این ماده ای زده یخ بشه که نباد یخ بمنده کسی که در قطب شمال هست بتونه چشمش رو باز و بسته بکنه که چشمش یخ نبنده آیا این احتمال هست خیر حاشا وکلا هیچ وقت احتمال نداره که همینطوری بدون آفریننده همینطوری خودش تصادفی وجود بیاد غیر ممکنه که تصادفی وجود بیاد باید آفرینندهای باشه که این نظم انزبات را وجود بیاره و این نظم انزبات را هم بذم چون اگر مثلا فرض مثال اگر ما دقیق بکنیم این نظم و انضباط هست ما میگیم این نظم و انضباط دلالت بر خدای یکتا میده و خدای دیگر نیست چرا چون اگر خدای دیگر بود این کهکشان به هم میریخت این نظم و انضباط به هم میریخت اون خدای دیگر میومد اظهار وجود میکرد میومد این نظر را به هم میزد همونطور که ما مثال معروف داریم آشپز که دوتا بشه آشور میشه یا شیرین باید این نظم و به هم میخورد ولی که این نظم و به هم نخورده و کسی هم نیمده که اظهار وجود بکنه بگه منم خدا هستم، منم این خلق آفرینش کردم اون خداوندی که فقط ابراز وجود کرده اظهار کرده که منم که منم فقط باید پرستیده بشم فقط خداوند یکتا هست که پیامبران را فرستاده از آدم گرفته و بعد نوح و بعد ابراهیم و بعد موسی، و بعد ایسا تا اینکه به رسول الله صلی الله علیه و وسلم میرسه اون فقط خداوند یکتا هست و کتابهای آسمانیش هم جاویدان موندن از سورات گرفته هرچند که دست خورده شدند و انجیلم همینطور و قرآنم همینطور فقط خداوند یکتا هست که اظهار وجود کرده و ابراز کرده که منم یکتا و کسی دیگه هم جز من نیست بله خداوند یکتاست اگر کسی دیگر بود یا باید اظهار وجود میکرد یا اینکه می اومد حداقل نزوین آفرینش رو به هم میزد خداوند هیچ وقت نگذشته که نزوین آفرینش به هم بخوره و کسی بیاد دست مخلوقاتش بیاره و این نظام رو به هم بزنه بله ام خلق من غیر ام هم الخالقون آیا احتمال داره که انسان خودش خالق باشه یعنی ما خودمون خودمون را خلق کردیم مگر وقتی که ماشینی می‌سازن نباید اون شخص سازنده اراده داشته باشه نباید بیاد مثلا بلفرض اسباب و وسایل فراهم بکنه برای ساختن نباید از خودش اراده داشته باشه که دستشو بلند بکنه یا مثلا دستشو پایین بیاره و یک چیز رو بلند, بز... بلند بکنه و سر جاش بذاره بله نیاز داره غیر ممکنه که تایرها تایرای ماشین خودش بلند بشه سر جای خودش واقع بشن اما ابو حنیفه رحمه الله وقتی که از هند فلاسفه بلند میشن اونهایی که در یکتا بودن خدا من شک داشتن اومدن نزد به حنیفه گفتن چطور تو اثبات وجود خدا میکنی به حنیفه مثال جالب بهشون میزنه میگه در کشتی شما در نظر بگیرید کشتی اومده بار را از فلان کشور رو ارده اومده کنار دریا خودش وسایلای خودش پایین رو پایین آورده گفت این ای ممکنه گفتن که نه گفتن خب این نظم این نظمی که در آفرینش هست چطور شما اون کشتی بدون اینکه ناخودی داشته باشه بدون اینکه کسی کشتی را هدایت بکنه از جای به جای دیگه شما قبول ندارید که اون مسیر را طی بکنه و چطور شما اجازه به خودتون نمیدید که یا قدرتتون عقلتون این درک رو نمیتونه بکنه که کشتی خودش رو باراشو پیاده بکنه با اشخاصی باشن اراده داشته باشن که بارها را پایین بیارن و کشتی را هدایت بکنن. ولی چطور شما نمیتونید بپذیرید و چطور قلب شما این باور را نمیتونه بکنه که خداوند یکتایی این نظم و انزباد در آفرینش را ایجاد کرده و این نظم و انزباد را گذاشته چطور شما این نظم و انزباد را در آفرینش بدون خدا میدونید ولی که اون کشتی را باید یک هدایت کنندهی برایش تعیم بکنید یا اون کسانی که بیان بار را تخییه بکنن چطور برای اون میپذیرید که کسی هدایت بکنه ولی که برای این مخلوقات عظیم از کوها گرفته از دشتها گرفته از اون ابری از باران میباره گرفته همه اینها شما اینها را بدون آفریننده میشمرید بله خداوند مثال میزنه ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجری في البحر بما ينفع الناس و ما انزل من السما در چه خداوند در شب و روز در کشتی که روی آبه و آن چیزی که خداوند از آسمان فرود فرومیفرسته از آب فما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها أن آبكم يفرسّف زميرا زندم يكون أم كي هاس كزميرا زندم يكونه كي هاس كدسر ميده أن قنچ أن نحال بروم بيات أنامز أن دانه فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب و حیوانات بسیاری رو بر روی زمین قرار داد کی هست که حیوانات رنگارنگ، پرندگان رنگارنگ را رو در روی زمین قرار داد و تصریف ریاح و صحاب اون بادهایی که میبینید از این ور اونور میوزه اون ابرهایی که میبینید گاهی هستن و گاهی نیستن و صرحب ممسخره به سمااعی و ااطل عات نقوم ها نشانه هایی هستن برای آن هایی که عقل و خرد دارن چرا اون ابر با این همه وز با این همه آب از روی آسمان نمییفته ولی که ما اگر چیزی را در روی فضابیگیریم خود خود جذب به ميشه میشه و میفته ولی که ابر از بالای سر ما با این همه آب عبور میکنه ولی اون ابر نمیفته. کسی هست که تسخير کرده مسخر کرده؟ اون عبرا نگه داشته در فضا که اون باد بیاد ببزه و اون ابرها را اینور و اونور ببره تا اینکه دستور بده خداوند که فلان جا باران بباره کی هست که این دستورات و این فرمایشات در این آفرینش قرار داده کسی جز خداوند یک تا نیست بله همانطور که کشتی باید هدایت کننده‌ای داشته باشه و بارهاش هم کسانی اون را تخییه بکنن همونطور هم این آفرینش کسی بود داشته باشه که اون را بچرخونه و رزق روزی‌ها را برای بندگان برسونه بله جز خداوند یکتا کسی دیگه نیست که این نظم و نظام در آفرینش را ایجاد بکنه و این نظم و انضباط را نگه بداره چنان چه بوده بله کسی نیست که خورشید و زمین را در آسمان نگه داشته این دو تا دلیل از مهمترین ادله وجود خداونده حال اینها بحث برهان عق بحث دلیل عقل اینهایی که ما گفتیم که غیر ممکنه که بدون بدون باشه بدون این کسی که که اراده بر خلقش داشته باشه حال انسان میتونه خودش خالق خودش باشه انسان میتونه آفریننده باشه آیا انسانی که قبل از وجود خودش نطفه بیش نبوده آب گندیده بیش نبوده آیا انسان میتونه خالق خودش باشه یک کسی که قدرت نداشته باشه میتونه خالق باشه خیر هر چیزی که ما میخوام بسازیم هم اراده لازمه که ما باید اراده ساختش بکنیم آرا چی میخواد آشپزی باشه چی میخواد ماشین سازی باشه هر چیزی که ما میخوام درست بکنیم یا بپذیم نیاز به این داره که ما اراده داشته باشیم و قدرت ایجادش داشته باشیم. اینطوری نیست که ما اراده بکنیم و بعد خودش به وجود, به وجود بیاد. حال آیا ما احتمال این هست که خودمون را خودمون ساخته باشیم اراده داشته باشیم در وجود خودمون خیر نه قدرتش داشتیم نه ارادهش؟ پس ما نمیتونیم آفریننده باشیم و همچنین بعضی ها میگن خب طبیعت ما را آفریده آیا میشه اون چیزی که کمونیست گردند اون کسانی که وجود خدا را انکار کردن گفتن که آفرینش طبیعت, طبیعت را، طبیعت او را به وجود ورده آیا طبیعت میتونه آفریننده باشه؟ ما گفتیم ام خلق من غیرشی هم الخالقون این قسمت دوم آیه خدا این رو داره به هم میگه که لازمه آفرینش اراده به قدرت آیا اون طبیعت که شما میگید اراده داشته که این نظم و انضباط رو به وجود بیاره؟ آیا قدرتش رو داشته؟ آیا شما طبیعت، شما که میگید طبیعت، خورشید توان این رو داره که در خودش جنگلی بسازه؟ آیا میتونه در روی خورشید و روی خورشید جنگلی از درخت به وجود بیاد؟ خیر، غیر ممکنه. چرا؟ چون خورشید از خودش اراده‌ای نداره. چگونه میتونه یک طبیعت خودش خودشو را خلقت بکنه لازمش اراده نیست لازمش خدا خودش... چرا در خودت از کمال این میبینی که هم عقل داشته باشی و هم اراده داشته باشی و هم قدرت داشته باشی هیچ وقت نمیاد بگی که لامپ را مثلا به فلان دیمونه درست کرده یا سگ درست کرده بگید نه یک انسان هوشیار یک انسانی که عقل و خرد داره چطور شما مثلا میاد میگه که بله بدن انسان را یک طبیعتی که عقل نداشته، خردی نداشته، هوشی نداره، میگه طبیعت عقل داره که این نظام آفرینش با این دقت را به وجود بیاره بدون اینکه اقل و خردی بدون که علمی داشته باشه خیر این چیز ممکن نیست. پس برهان عقل و برهان فطرت دلالت بر این دارن که خداوند یک تاست. و خداوند یکتا باید پرستیده بشه نه که تنها فقط خداشناسی چون خداشناسی و اینکه اعتقاد داشته باشیم خدا یکتاس به دردمون نمیخوره باید سر به سجدهشم بیرون بیاریم در بیاریم بله مشرکین امثال ابو جهل و دیگران عرب جاهلیت خدا را قبول داشتن به عنوان اینکه آفریننده هست به عنوان اینکه خداوند خالقه کل مما فی السماوات و الارض، یقولون ان بر اساس فلسفه‌شون اعتقاد داشتن خداوند یکتا ولی که بین خودشون و خدا واسطه قرار میدادن. ایمانشون نسبت به خدا ناقص بود. نمیخواستن بپذیرن که خداوند همه جا صداشون رو میشنوه. خداوند همه جا اونها رو بینه خداوند همه جا به دادشون میرسه و فریادارت اونها هست ضعف در ایمان به خدا داشتن که رسول الله صلی الله علیه و فرستاده میشه تا این که این فطرت خرابشون اصلاح بشه اون فطرتی که توسط آبا و اجدادشون خراب شده بود اون به گمراهی کشونده شده بود اومده بود رسول الله صلی اللہ علیه و سلم اصلاح بکنه تا دیگه بین خودشون و خدا واسطه قرار ندن و خداوند یکتا رو فقط صدا بزنن و فریاد بزنن واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و الله علی محمد و علی محمد